از آمدن و رفتن ما سودی کو و از تار وجود عمر ما پودی کو در چنبر چهر جسم چندین پاکان میسوزد و خاک میشود دودی کو ای آب حیات مزمرن در لب تو مگذار که بوسد لب ساقر لب تو گر خون سراحی نخورم مرد نییم او خود که بود که لب نهد بر لب تو آنم که پدید گشتم از قدرت تو صد ساله شدم به ناز و نعمت تو، صد سال به امتحان گنه خواهم کرد، یا جرم من است بیش یا رحمت تو. بردار پیاله با سبو ای دل جو برگرد به گرد سبز زار و لب جود، کینچرخ بسی قد بطان محروب، صد بار پیاله کرد و صد بار سبو.